دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را با که این بازی توان کرد شب تنهایم در قصد جان بود خیالش نوتهای بیکران کرد چرا چون لال خونین دل نباشم که با ما نرگس او سر گران کرد ترا گویم که با این درد جنسوز طبیبم قصد جان ناتوان کرد به دانسان سوخت چون شمعم که بر من سراهی گریه و بربت فغان کرد سباگر چارداری وقت وقت است که درد اشتیاغم قصد جان کرد میان مهربانان کیتوان گفت خیار ما چنین گفت و چنان کرد عدو با جان حافظ آن نکردی که تیر چشمان عبرو کمان کرد